یقینا مسئله رویش های نو به نو در نظام جمهوری اسلامی یکی از اساسی ترین و مهمترین مسائل است اگر یک انقلابی و هر حرکت و نهزتی در عالم رویش های نوین و پیدرپی پی نداشته باشد محکوم به زوال و فنا است جمهوری اسلامی در طول این سی و پنج سال توانسته است در هر برههای از خود جلوهای نو و متناسب با نیاز بروز بدهد افرادی نگران ریزش ها بودند گفته شد رویش ها بر ریزش ها غلبه خواهند کرد و همین شد اون چه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه کسانی که نیروی جوانی را در خدمت به اهداف و آرمانهای بلند میخواهند باید به آینده روشن و دور باشد. فقط جلو پای خودمون رو را نبینیم. آینده دور ایجاد تمدن اسلامی است تمدن، نوین متناسب با نیازها و زرفیتهای امروز بشریت بشریتی که از حوادث گوناگون قرنهای اخیر زخم خورده است مجروح است غمگین است و نسل های جوان آن دچار یأس و نومیدی و ابسوردگی اسلام می تواند این نسل ها را به آفاق جدیدی برساند دل های آنها را شاد کند آنها را انچنانی که متناسب به شایسته کرامت انسان است کرامت ببخشد تمدن نوین اسلامی یعنی این و شما های مهم و اساسی و اصلی در ایجاد این تمدنید آینده متعلق به شماست سازندگان آینده کشور و آینده این تمدن و در واقع آینده جهان شما جوانهای جوانهای امروزی بخشی از مجموعه روبروشده رویشها در نظام جمهوری اسلامی در این بخش یعنی در دانشگاه امام حسین تحقق پیدا میکنه در هر جا هستید. جوانهایی که در این دانشگاه و چه همه جوان ها در هر نقطه ای از کشور که احساس تعهد می کنند می توانند نقش آفرین باشند این دانشگاه جای مهمی است مرکز دانش است مرکز تحقیق است مرکز آموزش های انقلابی است مرکز آماده‌سازی‌های فکری و روحی است شما جوانها قدر بدانید مدیران و مسئولان همه تلاش خودشون رو به کار ببرند برای اینکه از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنند کما اینکه به حمد الله می‌کنند